به نام خدا کتاب افسانه های 72 دو ملت ترجمه احمد شاملو ارائه شده از کانال تلگرامی هزار افسان داستان های افسانه صوتی به مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده سما مهربان دو آسیابان که با یک زغال فروش هم سفر شدند یکی بود یکی نبود مردی بود که زغال فروشی داشت دست و بالش خیلی تنگ بود و غذا و احوال بهش خیلی سخت میگذشت یه روزی زغال فروش با خودش کرد که خدا کارش رو درست کنه بره توی زیارتگاهی که چندین فرسخت دورتر از محل بود شمع بزرگی روشن شم بکنه دست برغذا زد و کارش از کسادی در اومد دکانش رونقی گرفت و کسب و کاسبیش همونطوری شد که دلش میخواست این بود که یه روز زیارتی صبح زود خوشحال و خندان پاشد و افتاد از شهر رفت بیرون که نظرش رو انجام بده و شم رو که قول داده بود توی زیارتگاه روشن کنه کمی که راه رفت رسید به دو آسیابون که از قضا اونها می رفتند زیارت آسیابون ها از دیدن ذغال فروش خوشحال شدند قرار گذاشتند خوراکی هایی رو که برای راهشون برداشته بودند روی هم بریزند و توی یک جوال بزرگ بگذارند تا خورد و خوراک هر تاشون با هم باشه همین کار رو هم کردند چون مرد زغال فروش شار بدنش محکم تر از آسیابان ها بود قرار شد جوال خوراکی ها رو هم بیشتر از اونها به دوش بگیره خب دیگه معلوم دوتا آسیابان و یه زغال فروش که روی هم سه نفر میشن وقتی قرار باشه راه دور و درازی رو پیاده برن اشتهاشون زیاد میشه و خیلی غذا میخورند راه دور است و آدم ها دم به دم خسته و گرسنه نمیشن در نتیجه قضا هرچی زیاد باشه باز دو روز که گذشت تموم میشه باری برای اون ستا هم همینطور شد هنوز هیچی نشده کفگیر خورد ته دید. از همه چیزهایی که اونا با خودشون آورده بودن فقط تا مشت آرد باقی موند و به اندازه تا گردو کره آسیابون ها که اینطور دیدند یواشکی در گوشه هم چیزی گفتند و با هم ساخت و پاخ کردند قرار گذاشتند سر زغال فروش رو کلاه بگذارند و موقع خوردن کلوچه ای که البته با این آرد و کرم می ساختند هیچ به زغال فروش ندن. وقتی یواشکی قرار و مدارش رو گذاشتند یکی از آسیابانها گفت خوب همشهری ها باید این آرد باقی مونده رو هم با کره خمیر کنیم و کلوچه بپزیم. چاره نیست. بالاخره خدا بزرگه. دومی آهی کشید و گفت بله باید کلوچه رو درست کنیم. منتها هفت که زیاد گنده نمیشه. چون که دو سه مشت به اندازه ای دو سه تا گردو کره بیشتر نداریم. اولی که حرف دومی رو شنید دوباره نطقش باز شد و گفت طوری که تو میگی این کلوچه آخری یک کوچولوی بی بیمصرف خواهد شد به طوری که اگه اون رو قسمت بکنیم هر کدوم یه تیکه از اون رو برداریم این تیکه ها فقط خاصیتشون این میشه که اشتهای آدم رو بیشتر تحریک بکنه آسیه اولی ادامه داد و گفت خب پس به عقیده تو چیکار باید کنیم؟ رفیقش گفت من و تو که آسیابان هستیم عقیدمون معلومه من معتقدم این زغال فروشم بهتر عقیده ما را قبول کنه زغال فروش که خودشو به نفهم میزده بود گفت مگه آسیابون‌ها چه عقیده ای دارن؟ آسیابون گفت والا من نمیدونم که شما زغال فروش ها تو اینجور موقع ها چیکار کار میکنید ولی رسم ما ها که آسیابان هستیم اینه که وقتی غذا کم باشه و سه نفر رو سیر نکنه اون رو فقط به یک نفر میدیم بخوره که لاعقل اون سیر بشه و بقیه از حق خودشون میگذرن رسم خوبی نیست؟ درسته که آسیابان گفت غذا رو میدیم یک نفر بخوره اما حقیقتش اینکه که اون رفیقش تصمیم گرفته بودن کلوچه رو خودشون قسمت بکنن و فقط کلا رو سر زغال فروش بذارن وقتی حرف آسیابان اولی تموم شد آسیابان دومی هم دنبال حرفش رو گرفت و گفت بله بله حالا که غذای مصر و فقط یه دونه کلوچه میشه بهتر اونو فقط یه نفر بخوره دو نفر دیگرمون به خاطر رفاقت و دوستی و همسفری از حق خودمون چشم پوشی کنیم. زغال فروش که آدم باهوشی بود و تا تر قضیه رو فهمیده بود گفت عقیده شما آسیابانها بسیار عقیده خوبیست منطقه بگویید ببینم چطوری تعیین میکنید که کلوچه سهم کدوم یکی از ما است. یکی از آسیابانها گفت بله حق با توه ولی بدون آگاه باش که تو این مورد انتخاب آدمی که کلوچه رو خواهد خورد به دست ما نیست به دست خداست زغال فروش گفت آخه چطور آسیابان گفت خیلی ساده است کلوچه رو درست میکنیم میگیریم میخوابیم هر کدوم از ما سه نفر که خواب بهتری دید کلوچه ماله اونه دلاخره قرار شد که زغال فروش هم رسم آسیابان ها رو قبول کنه همین که شب شد زیر یه درخت بزرگ اطراخ کردند. یکی از آسیابان ها آب و و یکی از آسیابان ها خمیر کرد. زغال فروشم سرشاخه های خشکی از این وران ور جمع کرد و آتیش زد و وقتی شعله آتیش خوابید کلوچه رو زیر خلواره گرم گذاشت که یواش یواش برای خودش به اون و هر کدوم از مونها خودشون رو لای بالا پیچیدند و هر تا گرفتند تخ خوابیدند که خواب ببینند. فردا صبح خوابشون رو برای هم تعریف کنن تا هرکی خواب بهتری دید گلوچه رو از زیر خلوار در بیاره و بخوره. صبح که شد از خواب بیدار شدن و وقتی دیدن زغال فروش هنوز خوابه تو دلشون گفتن ها از قدیم گفتن هرکی سهرخیز نباشه کام روانیست لابد ما که صبح به این زودی بیدار شدیم دنیا هم به کام ماست دست صورتشون رو شستند و سر و روی صفا دادند. اومدند نشستن کنار بالین زغال فروش. اولی بدون اینکه صبر بکنه زغال فروش از خواب بیدار بشه گفت: گوش بدید دوستم. خواب من این بود. دو تا فرشته دست های من رو گرفته بودند و همونطور بال زنان مرا به هوا بلند کردند و دارن سراسر سر جهنم رو به من نشون میدن. من از بالا میبینم که آدمای دروغگو و کاره چطور توی آتیش جهنم میسوزن و زجه میزنند. این خواب رو آسیابان اولی مخصوصا از این جهت جعل کرد که رفقاش خیال نکنند اون از خودش ساخته چون البته فکر میکنن کسی که میدونه عاقبت دروغگویی سوختن در آتیش جهنمه چطور ممکنه خودش دروغ بگه. اون وقت شروع کرد به شرح اون چه در جهنم دیده. گودال عظیم پر از دود و آتش دریاهای عظیمی که به جای آب سرب مذاب در آن بود و حیوانات وحشتناکی در آن قوطه میخوردند گرداب های عظیمی که دروگگاه رو میبلید و شیطان های مخوفی که دروگگاه رو نوک چنگال ها زده توی این دریای سوزان فرو می‌بردند و در می‌آوردند و گوشته اونها را مثل کباب به دندان میکشیدند و هزار چیز دیگه که خدا میدونه چطور تونست به اون سرعت از خودش بسازه و تحویل بده. اما آسیابان دومی هم کم از آسیابان اول نبود. چون که اون گفت حالا دوستان خواب منو گوش بدید. من هم خواب دیدم که دوتا فرشته دست هم رو گرفتن و تو آسمو پرواز می کند. کمی که پریدن به من گفتن که زیر پامو نگاه کنم. وقتی نگاه کردم دیدم، بهبه بهبه چه باغی چه صفایی چه دنیایی گفتم ای فرشته های آسمونی اینجا کجاست گفتند ای آسیابان پاک دل، اینجا خانه توست اینجا آسایشگاه توست اینجا بهشت است و آن امارت کوچک خوشکل که میبینی خانه است که پنج دختر بهشتی در انتظار تو هستند. تا به این دنیا بیاییم و ثمره نیکی و نیکوکاری خود را بگیریم بله آسیابان ها خوابای خودشون تعریف کردن گفتن و گفتن و گفتند. اما هرچی طول دادن دیدن نخه زغال فروش خیال بیدار شدن نداره خیال کردن مرده اما وقتی که تکونش دادن دیدن رو باز کرد گفتند رفیق بلند شو خوابت تعریف کن ببینیم خواب کدوم یکیمون بهتره زغال فروش گفت والا نمیدونم خواب کدوم یکیمون بهتره چون که دیشب خواب دیدم دوتا فرشته زیر بغل منو گرفتن آوردن جایی که مقداری خاکستر گرم جمع شده معلومه که زیرش کروچه گذاشتن اون وقت خاکسترها رو با بالشون پس زدند. و کلوچه قشنگی و در آوردن رو و دادن به من همون طور خوابالود اون رو خوردم هیچ نمیدونم تو خواب بود یا بیداری حالا خاکسترها رو پس کنید ببینیم آسیابون ها پریدن سراغ اوجا وقتی که خاکسترها رو کنار زدند دیدن که ای داد بیدا جاتره و بچه نیست اون وقت پشت دستشونو رو کردند که دیگه هیچ وقت تصمیم نگیرند سر کسی رو کلاه بذارند